279 سازمان چاپ و انتشارات اقبال تی 279 احساس می‌کرد که رفته‌رفتی بیپوری گذشته خود را فراموش کرده سندباد بعد از شام به شرح سومین سفر دریایی خود پرداخت سومین سفر دریایی سندباد بحری پس از مدتها زندگی خوب و فراموش کردن خطراتی که در طول سفرهای قبلی خود با آن روبرو شده بودم باز هم از زندگی آسوده و یک نواخت خسته شده و تصمیم گرفتم با تجربه هایی که ام، به سفر و استقبال از خطر بپردازم روزی با مال و تجاره های مرقو و گران قیمت از شهر بغداد سفر خود را آغاز کردم و بعد از چندی وارد شهر بسته شدم و در آنجا به اتفاق گروهی از بازرگانان معتبر سوار کشتی شده و سفر سوم خود را آغاز کردم سفر دریایی درازی را در پیش گرفتم و بعد از مدتها دریانوردی و بازدید چندین بندر مهم کشتی ما وارد اقیانوس اصلی کردید. گردباد و طوفان هرلاکی آغاز شد و اختیار راندن را از ناخدا گرفت و ما راه خود را گم کردیم این طوفان سخت چندین روز ای ادامه داشت تا آنکه به بندری در جزیره‌ای که آن را نمیشناختم وارد شدیم گرچه ناخدای کشتی به هیچ وجه نبود به این جزیره وارد شویم ولی به خاطر وضع باد هوا چاره‌ای نداشت و اجباراً در بندر مزبور لنگر انداخت ناخدا به ما توصیه کرد که بسیار با احتیاط باشیم زیرا او این نواحی را می‌شناخت و گفت این جزیره و جزیره‌های مجاور آن مسکن بومی‌های وحشی است که بدن آنها پوشیده از موهای بلند می باشد و با وجودی که جسته آنها کوچک است اما همین که چشمشان به موجودی بیفتد بدون درنگ به او حمله ور می شوند ولی مقاومت در برابر این وحشیها سودی نخواهد داشت و اگر یک نفر از آنها کشته شود مانند گروه گروههای ملخ حجوم خود را آغاز می کنند و رهایی از دست آنها غیر ممکن است و همه ما را نابود خواهند ساخت سخنان ناخدا همه مسافرین را در حیرت عمیقی فرو برد ولی خیلی زود پی بردیم که آنچه او گفته بود عین حقیقت بوده است. زیرا در همان لحظه تعداد بیشماری از این موجودات پشمالو را دیدیم که با سرعت به سوی کشتی شناکنان نزدیک شدند و در یک چشم هم زدند دورادور کشتی را محاصره و با زبانی با ما حرف میزدند که اصلا چیزی از آن نمیفهمیدیم. این وحشیها با قیافه‌های ترسناک خود از های کشتی آنچنان سری بالا آمده و خود را روی عرشه قرار دادند که همگی ما را دچار حیرت و وحشت فراوان کردند در حالی که ترس فوق سراسر سراسر وجودمان را فرا گرفته بود این صحنه کم نظیر را تماشا میکردیم و و قدرت دفاع به کلی از همگی سلب شده بود و حتی نمیتوانستیم با هم سخن بگوییم که بالاخره چهی را باید ده پیش گرفت. این وحشیها طاب های کشتی را بریدند دادبان را دریدند و ما را هم مجبور کردند که دنبال آنها با کشتی به جزیره دیگری برویم. و این همان جزیره ای بود که آنها در آنجا زندگی میکردند ما در آن جزیره که بوی مرگ از آن به مشام میرسید وارد شدیم و با صرف اندکی میوه و گیاههای خوردنی توانستیم تا آنجا که مقدور بود چند روزی به طور زنده‌ماندن خود بیافزاییم ولی در این جزیره دورافتاده از تمدن و آدمیزاد خبری نبود به محض ورود متوجه شدیم در فاصله دور ساختمان عظیمی خودنمایی میکند که به سوی آن پیش رفتیم به آنجا که رسیدیم قصر بزرگ و زیبایی دیدیم که بسیار مرتفع بود نر ورودی آن از آبنوس و به شکل دو برگ درخت ساخته شده بود آن را گشودیم و به داخل قشر قدم گذاشتیم فضای وسیعی در جلوی خود دیدیم و در مقابل تالار پهناوری قرار گرفته بود که آن را به سرسرای وسیعی منتهی کرد. یک سوی این تالار طلی از استخوانهای انسان روی هم انباشته بودند و در سوی دیگر انسان‌های می شدند که مانند کباب آنها را به سیخ کشیده بودند. با دیدن این صحنه دلخراش از ترس بر جای خود میخکوب شدیم. پاهای ما قدرت تحمل و ایستادن نداشتند. خورشید غروب می‌کرد و ما هم با مشاهده این منظره رقتانگیز در تعثر اندوه جان فرو رفته بودیم که ناگهان در ورودی قصر با صدای مهیبی گشوده شد. و مرد سیاه بوز قد او به بلندی درخت نخل بود در آسانه در پریدار شد این گوله بیشا خودم یک چشم داشت که آن هم درست در وسط پیشانی او قرار گرفته بود دندانهای قسمت جلو بسیار تیز و بلند و از دهان او که مانند دهان اسب بود بیرون آمده بود نب پایین او تا بالای سینه آویزان بود و گوشهایش مانند گوشهای فیل. و ناخونهای او دراز و برگشته مانند چنگال پرندگان بود با مشاهدهٔ قیافه ترسناک این نر غول از شدت ترس بیهوش شده و نقش بر زمین شدیم وقتی به حوش آمدیم غول را دیدیم که در ایوان نشسته و مشغول تماشا کردن ما است آنگاه به سمت من آمد و خوب قیافه و هیکل مرا ورانداز کرد و سپس پس گردن مرا گرفته و مانند قصاب‌ها که میخواهند گوسفندی را برای کشتن وارسی کنند مرا دور خودم چرخانید و حس کرد که من لاغرم و مجد استخوان و پوست بیشتر نیستم به بی این تصیب مرا نپسندید و به زمین گذاشت و با حق خودم از بازرگانان دیگر به همین ترتیب رفتار کرد تا به ناخودان کشتی که از تمام ما به تربود رسید و مانند گنجشکی او را از زمین بلند کرد و او را به سیخ کشید و آتش سراوانی برافروخت و او را رو رو روی آن کباب کرد. آن آن دیچاره را برای شام خود در تالار برد و در همانجا جا خورد و بلافاصله به ایوان قصر آمد و در آنجا به خواب فرو رفت و نفیر او صدای رد و قرش آسمان در فضای قصر تنی شد اون شب را تا طلوع آفتاب در همان ایوان خوابید ولی ما که همه نیروی خود را از دست داده بودیم آنچنان گرفتار ترس بودیم که نگرانی به ما فرصت نمی‌داد داد به استراحت بپردازیم. و با این بدبختی تا صبح موج برهم نزدیم صبح قول از خواب بیدار و از قج خارج شد و ما را در قصد تنها گذاشت وقتی دیدیم که او در آنجا نیست هر کدام از ما به گریه و زاری و اظهار تأسف برای ناخدا و همچنین برای سرنوشتی که گرفتار آن شده بودیم کردیم هر روز نوبت یکی از ما بیچاره ها بود که تومه قول بیشا خودم می میشدیم گشت تعداد ما بسیار بود و دشمن ما فقط یک نفر ولی آنچنان ترس بر ما غلبه کرده و روحی خدا باخته بودیم که در آن اوایل به فکرمان رسید که میتوانیم با کشتن قول به این بدبختی پایان دهیم. این راه هر گشت بسیار سخت دشوار بود ولی چاری جز آن نداشتیم، زیرا تنها راه نجات ما در آن بود. راههای دیگری را هم برای خلاصی خود مورد بررسی قرار دادیم ولی به نتیجه بهتری نرسیدیم. بنابراین خود را تصمیم به رضای حق کردیم، و روزها در جزیره در جستجوی میوه و سبزی های قابل خوردن میگشتیم تا زنده بمانیم شبها هم قول کزایی به قصد برمیگشت و قرعه فال به یکی از وفقای ما اصابت میکرد و به عنوان شام تومی گول خونخاروبی ره میگردید و روی آتش کباب میشد و قول هم از او شام خوبی تهیه میکرد گول پس از صرف شام مانن شبهایی دیگر دل فاصله به ایوان میرفت و, می و سکوت هم میزد. تا آنکه صبح فرا میرسید و از خواب بیدار میشد و دنبال کار خود میرفت ما با وضع وحشتناکی روبرو بودیم چون سرنوشت می خود را میدانستیم و حتی چند نفر از رفقای ما حاضر شدند در دریا خود را غرق کنند و به کام مرگ روند تا به کام آن گول خوناشام آن هم با آن شکنجه و زج و کباب شدن در آتش دوستانی که مرگ در دریا را به سوختن در آتش ترجیح دادند، دیگران را تشویق میکردم که از آنها پیروی کنند و همگی خود را به آن دریا بیاندازند. یکی از میان ما به سخن آمد و از داشت، حال که آماده مرگ هستیم، چرا در شکی چاره‌ای بهتری بر تا باز که بتوانیم جان خود را از مرگ برهانیم و از چنگال این افریق مرگ باز فرار کنیم که با این زلت ما را به نابودی میکشاند من که این سخنان را شنیدم فریاد زدم دوستان بیایید بعض آن همه تنه درختان مستکم که در جنگل افتاده استفاده کنیم و تخته های شناوری با وصل کردن آنها به یکدیگر با تنابهای محکم و قطور درست کنیم که بتوانیم مانند کشتی ما را رو روی آب حرکت دهد. هنگامی که این شناورها را ساختیم آنها را در گوشه دور از نظر پنهان کنیم تا بعدا در فرصت مناسب از آنها استفاده کنیم و از شر این گل آدم خار خود را نجات دهیم. اگر موفق شویم که غور را به دیار نیستی روانه سازیم زندگی خود را در این جزیره ادامه می دهیم تا عاقبت کشتی از اینجا عبور کنند و خود را به کشتی رسانیم و اگر نقشه ما در کشتن غور نقش بر آب شود ناچارم با همین شناورها دل به دریا خواهیم زد و دنبال سرنوشت خود روانه خواهیم شد البته این اقدام خالی از خطر غرق شدن در امواج دریا نیست و چنانچه در دل امواج هم فرو رویم باز بتر از این است که تومه قول آدم آدم‌خور شویم. این گول تا حالا ست از دوستان ما را بلعیده است. نظر من این است که های شناور را طوری درست کنیم که بر روی هر کدام سه نفر بنشینند. هنگام غروب و فرار شب باز به داخل قصد وارد شدیم و گول هم بعد از اندکی ماننده هر شب وارد شد و باز ما شاهد خورده شدن یکی دیگر از دوستانمان توسط غول شدیم. اما سرانجام انتقام خود را از این گول درنده گرفتیم. انتقام ما بدین قرار بود که قور بعد از آنکه شامه جنایتکارانه خود را مانند شبهای دیگر صرف کرد، به ایوان قصد رفت و در آنجا بیهوش افتاد و صدای نفیرش از در فضا منعکس گردید. در این هنگام، من به اتفاق پنج نفر از که دل جرأت بیشتری داشتند، برخاستیم و چندین عدد از آن سیخ‌ها را برداشتیم و در آتش فروزان فرو کردیم. آنقدر نگه داشتیم تا از شدت حرارت کاملا به رنگ سرخ آتشی درآمدند. آنگاه به سراغ غول رفتیم و در حالی که در خواب بود های داغ را در چشم او فرو کردیم و چشمش را نابینا ساختیم بوی سوختگی همراه با دود از چشمان او در فضا منتشر شد فریاد دردناکی از جگر برکشید و از شدت درد چون مار بر خود میپیچید و از جا برخاستو دستهای خود را به اطراف دراز کرد تا خشم خود را فرو نشاند و بتواند افرادی که این بلا را به سر او آورده اند بگیرد اما به محلی رفته بودیم که نمی ما را پیدا کند. او که بیهوده در جستجوی ما بود با دستهایش اطراف لمس می کرد تا شاید در خروجی قسم را پیدا کند و بالاخره در حالی که ناله می و می توانست از قسم کار شود. ما که خود را پنهان کرده بودیم، پس از خروج قول از قسم بیرون رفتیم و های شناور را تا دریا کشاندیم و به آب انداختیم و در آنجا در انتظار ماندیم که از حال وقوع قول با خبر شویم. با خود قرار گذاشتیم که تا فضا صبح در کنار دریا منتظر بمانیم که آیا هنوز صدای ناله قول ادامه خواهد داشت یا نه؟ اگر به پایان رسد معلوم است که مرده است. آن وقت در جزیره صبت میکنیم تا وقتی که کشتی که از آن نقطه عبور کند و ما هم سوار آن شویم. صدای غل تا سبییده صبح ادامه داشت و در آن هنگام مشاهده کردیم که قول نابینا به اتفاق دو قول دیگر به سوی ما پیش میآیند ضمنلا قولول های بیشمار دیگری هم از دور نمایان شدند که به سوی محلی که ما ایستاده بودیم در حال حرکت بودند. ما که وضع را بدیم ننوال دیدیم، فورا خود را بر روی تخته های شناور انداختیم و با به بردن پاروهایی که قبلا آماده کرده بودیم خود را از ساحل دریا دور کردیم. ولی ولیقولولها تخت سنگ های بزرگ را با منطقه های قدرت و شدت به سوی ما پرتاب میکردند و به قدر زندگیان آنها دقیق بود، کاقبت تخت سنگها به دو تا از شناورهای ما برخورد کرده و با باعث واژگون شدن آنها شد فقط دو نفر از رفقای ما جان سالم بدن بردند من و دو رفیق دیگر با تمام نیروی خود و با هر سرعتی که امکان داشت پاروزنان خود را از مهلکه دور میکردیم بعد از آن آنکه سرانجام از قول ها دور شدیم و قدری جلوتر راندیم باد سختی شروع شد و تختی شناور ما را گاهی به این سو و گاهی به سوی دیگر متمایل میساخت و تعادل خود را از دست داده بودیم و تمام شب تا آغاز سبیده صبح بر روی امواج متلاطم دریا بالا و پایین می رفتیم و دستخوش حرکات تند آن بودیم و تقریبا امیدی به زنده ماندن خود نداشتیم. به هر حال خود را به دست توانایی سنه سپرده بودیم و خوشبختانه حرکات امواج ما را به کناره جزیره رسانید. با دیدن جزیره با تمامی نیرو تختی شناور را از رخت امواج به کناری کشیده و وارد جزیره شدیم. درختان انبوه میوه زمین جزیره را پوشانده بود. بدون مرتلی خود را به درختان رسانیدم و از میوه های خوشمزه آنجا که می خوردیم و نیروی تازه‌ای یافتیم. آنقدر خسته و فرسوده بودیم که شب را در همان کناره دریا به خواب رفتیم. نمیدانم چه مدت در خواب بودیم که صدای مار عظیم‌جثه ای که طول قطر آن برابری تنه درخت نخلی بود ما را از خواب بیدار کرد در نزدیکی خود مشاهده کردیم که فلس‌های پوست مار در حین حرکت صدای زنگ را در فضا به راه اندازد هنوز چشمانم کاملا عادت به تشخیص مار در فضای نیمه تاریک شب نکرده بود که یکی از رفقایب را برآید و بلافاصله چندین بار به دور تنه درختی چرخید و فشار آورد و مرد بیچاره را با فشار عضلات خود خرد کرد به طوری که صدای خرد شدن استخانها به گوشمان رسید. روز بعد باز سرکرلی ما را آدم نمایان شد و باز ترس و وحشت ما را فرا گرفت من فریاد براوردم خدایا خداوندگارا دیگر بس است این چه شومی است که در انتظار ماست. دیروز از شر قولها و امواج خروشان دریا جان سالم به در امروز ما را گرفتار این مار حیولا و خون آشام کردی مگر ما چه گناهی به درگاه تو کردیم همین که در حال فرار از خطر مار بودیم به درخت بسیار بلند و تنومندی رسیدیم که پیش خود تصور کردیم برای فرار از خطر این درخت پناگاه خوبی خواهد بود با این تصیب با خوردن میوه های خوشمزه شکم خود را سیر کردیم و از درخت بالا رفتیم تا خود را به نوک آن رساندیم و در بین چندین شاخه قطور خود را جای دادیم چند دسته بعد فشفش مار توجه ما را به سوی خود کرد. و دیدیم که سر خود را به نزدیکی ما آورده و در همین موقع دهان خود را گشود و رفیق مرا که در روی پایین تر قرار گرفته بود بلعید و از نظر ناپدید شد من تا صبح همچنان در روی همان شاخه بالایی درخت باقی ماندم و در سپید دم مانند مرده متحرکی از درخت پایین آمدم و با خود فکر می میکردم که من هم به سرنوشت دو رفیق دیگرم دچار خواهم شد این فکر مرا سخت دچار نگرانی کرده بود و تصمیم گرفتم برای رهایی از اندوه خود را به دریا افکنم ولی بعد از چند لحظه به وحش غریزه و علاقه به ادامه زندگی تغییر عقیده دادم و با خود گفتم باید توکل به خداوند توانا کرد زیرا سرنوشت همه آفریدگان در دست توانای اوست تمام روز سرگرم شاخه شاخه‌ها و ساقه‌های درختان جنگلی و چوب‌های گوناگون شدم تا توانستم به کمک آنها دور تا دور درختی را که شب قبل بالای آن پناه برده بودم حساری کشیدم و همچنین اطراف شاخهای را که در روی آن پنهان شده بودم را با همون همان ها و چوب ها دیواره حفاظی کشیدم با این ترتیب تا حدی آرامش و آسایش فکری خود را به دست آوردم با فراریدن شب از درخت بالا رفتم و در جایگاه خود قرار گرفتم اما ترس و تنهایی هزاران فکر ناراحت کننده را در ذهنم زنده میکرد باز هم امیدوار بودم دیواری که های چوب و تنه درختان و ترکه ها درست کرده بودم مرا در امان نگه خواهند داشت مدتی نگذشته بود که مار هیولا پیدا شد میخواست را به تنه درخت برساند ولی حساری که دور تنه درخت کشیده بودم مانع عبور او بود در وقتی فرصتی میگشت که راهی پیدا کند تا به من دست یابد به هر حال ناچار بود که در مجاور همان دیوار کذایی بنشیند و مانند گربه‌ای که در گرفتن موش بیچاره کمین میکند، تا صبح در کمین من بمشیند همین که سپیدی صبح همه جا را روشن کرد مار هم به راه افتاد و به سوی لانهی خود جوانه شد من از خستگی و نفس مسموم مار که تمام شب را در کنار درخت سر برده بود احساس سالت می‌کردم و وحشت و اضطراب که تعادل روحی مرا به هم زده بود بیش از ترسیدن از نیش مار و زهرکشنده آن مرا رنج میداد. از درخت به زیر آمدم فراموش کردم که روز گذشته به خداوند و صنمی خود توکل جسته بودم و با سرعت به سوی دریا شتافتم تا خود را به دریا اندازم و از این زندگی مملو از دلحوری و ترس خود را آزاد سازم و در کام دریا غرق شوم خداوند به حال زار من ترحم آورد زیرا درست قبل از آن که خود را به دریا افکنم مشاهده کردم های کشتی از مسافت دور است که به سوی ساحل در حرکت میباشد از من منصرف شدم همون ایستادم و به فریاد بسیار بلند صدا زدم و یاری خواستم و پارچه کتان سفیدی را که در زیر دستار خود میبستم از سرم باز کردم و آن را بالای سر خود به حرکت درآوردم. وردم خوشبختان ناخدای کشتی متوجه حضور من در آن جزیره شد و کارکنان کشتی هم مرا دیدند و به دستور ناخدا با قایقی به سوی من آمدند و مرا سوار کرده به طرف کشتی روانه شدند همین که من پا به عرشه گذاشتم تمام بازرگانان سرنشین کشتی و کارکنان کشتی دون من گرد آمدند و می‌پرسیدند که چگونه توانسته بودی در این جزیره قدم گذاری و از خطرات گوناگون در امان باشی. من همانچه چه برای هم اتفاق افتاده بود برایشان شهر دادم. آنگاه بازرگانی که از همه پیرتر و جهان دیده تر بود اظهار داشت که این جزیره از لحاظ موجودات آدم که در آن زندگی شهرت بسیار دارد. و همه دریانوردان می دانند که این جزیره محل زندگی قول یک چشم است که انسانها را زنده زنده و یا کباب کرده می همچنین درباره مارهای تنومد و هیولای این جزیره صحبت کرد و اطلاع داشت که این مارها بسیار قوی و شکار خود را درستی می بلند. آنها به دور تنهی درخت می و حیوان یا انسان را در شکم خود خورد می کنند. این مارهای عظیم و جسه در طول روز از ترس آن پرنده حیولا خود را در زیر زمین پنهان میسازند و شبها برای گرفتن شکار و تمه به حركت همه یک کسانی که در اطراف من بودند و مرا در میان گرفته و به صحبتها و سرگذشتهای من با علاقهمندی گوش میدادند از اینکه من به خاست خداوند بزرگ در برابر این همه خطرات مرگبار در این جزیره جان سالم بدر برده بودم اظهار خوشحالی میکردند و غذاها و نوشیدنیهای گوارا برایم حاضر کردند و سخاوتمندانه از من پذیرایی کردند ناخودای کشتی که ملاحظه کله باسی هم جنده و پاره شده است بلافاصله به اتاق خود رفت و یک دست جامعه نو و آب من آورد و از من خواست که این هدیه را از او بپذیرم من هم با خوشحالی تشکر جامعه را گرفتم و پوشیدم. پس از مدتی کشتی به سفر خود ادامه داد و بعد از عبور از چندین جزیره و بندر سرانجام به صلابت رسیدیم و در آنجا پیاده شدیم در این سرزمین درخت صندل که چوب بسیار قدیمی دارد و برای مصارف صنعتی نیاز شدید به آن است فراوان می روید. کشتی در آنجا لنگر انداخت و بازرگانان به آن رسیدند و از آنجا پیاده شدند و کالاهای خود را که در انبارهای کشتی بود تخفیل گرفتند تا آنان را بفروشند یا با کالاهای دیگر رد و بدل کنند. در این هنگام ناخودهای کشتی هم نزدیک من اومد و با دوستان دوستانه برادر. من چند اد کالا در انبار کشتی دارم که مال بازرگانی است که چند وقت پیش به این کشتی سوار شد و بعدا به درود زندگی گفت و من از آن زمان تا قنون در جستجو هم که بازماندگان و ورثه او را پیدا کنم و این اموال امانتی را به او دهم آنگاه بارهای کالا را به من نشان داد و گفت اینها همان اموالی است که گفتم و از تو خواهش دارم که این اموال را در اختیار خود گیری و آن را به فروش رسانی و حق زحمه خودت را برداری و بقیه‌اش را به من دهی که اگر روزی بازمانده‌ای پیدا شد به او تسلیم کنم من از ناخدا تشکر کردم که با این مأموریت برای من سرگرمی پدید آورد حسابدار کشتی از اموال صورت برداری کرد و نوع کالاها را رو روی کاغذ نوشت وقتی حسابدار از ناخدا درباره نام بازرگانی که کالاهایش در کشتی مانده بود سوال کرد که در برابر نام او چه نامی بنویسد ناخدا جواب داد بنویس سندباد بحری و بعد اضافه کرد آری سندباد با تاجری تجاری بود که از بغداد آمده بود و در بندر بصرة سوار این کشتی شد و مال و تجاری خود را هم به انبار کشتی تحویل داد. در هنگام سفر روزی برای استراحت آبگیری و سوختگیری آب سوخ در یکی از جزایر لنگر انداختیم و سرنشینان کشتی برای استراحت و گردش از کشتی پیاده شده و داخل جزیره رفته بودند ولی به هنگام حرکت کشتی سندبا را که در آن وقت اشتباهاً متوجه نشدیم، به کشتی مراجع نکرده در جزیره گذاشتیم و حرکت کردیم. متاسفانه بعد از آنکه مدت چهار ساعت میراندیم و باد موافق هم در پشت کشتی بود، متوجه شدیم که با در کشته نیست. ولی چون طوفان بزرگی آغاز می‌شد و در برگشت با طوفان روبرو می‌شدیم و جان همه مسافرین در خطر می افتاد ناچار بودیم به سفر خود ادامه دهیم و سندباد را در جزیره به حال خود گذاریم. مطمئن. مطمئنم که او در آن جزیره مرده است و اموالش در این کشتی بدون صاحب مانده است. وقتی نام سندباد بحری از دهان ناخدا خارج شد و او را شخص مرده‌ای به شمار آورد، شدیداً تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار گرفتم. در حالی که نگاه خود را روی چشمان ناخدا ثابت نگه داشته و به او خیره شده بودم، به یادم آمد این شخص همان ناخودایی است که بر اثر قفلت مرا در دومین سفر دریاییم در آن جزیره پر از خطر جا گذاشته بود و به آنکه در جستجوی من برایت به سفر خود ادامه داده بود. من در ابتدای دیدارم با ناخدا او را نشناختم، زیرا تغییر بسیاری در چهره‌اش پدیدار شده بود. از سوی دیگر ناخدا هم اطمینان داشت که من یکه و تنها دوام نیاورده و مردم. اما از اینکه ناخدا مرا نشناخت، زیاد تجربی نکردم و به او گفتم آیا اطمینان داری که این مال و تجاره ها مال سندباد بحری جواب داد: بلی، مطمئنم که نام او سندباد بوده است. از بغداد آمده بود، در بندر بسره به کشتی من سوار شد و مال و تجارهای خود را کشتی کرد. دوباره از ناخدا پرسیدم: تو اطمینان داری که سندباد زنده نیست؟ ناخدا گفت: بلی، مطمئنم، بدون شک فوت کرده. در این هنگام نگاهی به ناخدا کردم و گفتم: نه، اینطور نیست. به صورت و من نگاه کن. من سنباد هستم و نمردم همان سنبادی که تو در جزیره خطر او را به حال خود رها کردی و رفتی و حتی کسی را هم برای جستجوی او نفرستادی ناخدا با شنیدن سخنان من به چشمانم خیره شد و سرانجام مرا شناخت و در آغوش گرفت و گفت پناه بر خداوند مهربان و بخشنده خداوند را هزار بار سپاس که مرا از عذاب وجدان نجات بخشید آنگاه ناخدا کالاهایی را که در روی عرشه اباشته بود به من نشان داد و گفت این ها مالی تو هستند و من در نگهداری آنها مراقبت بسیار کرده تا مبادا و به آن وارد چود. اینک تمام آنها را با سودی که در نتیجه تجارت و فروش کالاهای های اولیه تو و خرید مجدد و رد و بدل کردن آن با کالاهای دیگر به دست آمده به تو سبارم. من کالاهای خود و سود حاصل از معاملات انجام شده را از ما خدای گرفتم و از زحمات و های او سپاسگزاری کردم و به او گفتم من خود را مدیون محبت او و امانت داری او میدانم. از جزیره سلابت به چندین جزیره دیگر سفر کردیم و از آن جزایر مقادیر قابل ملاحظه محصولات غذای نایاب خریداری کردم که با خود به بغداد هم کنم. همین که از آخرین جزیره بادبان ها را کشیدند، بلنگر را برداشتند و کشتی به راه افتاد، ناگهان چشم به لاک پشتی افتاد که بیست زر طول آن و چندین زر عرض آن بود و چنین داک پشت عظیمی تا آن هنگام ندیده بودم همچنین ماهی عجیب و غریبی دیدم که سر ماهی شبیه به گاو بود و آن را گاو ماهی مینامیدن که جز به پستانداران بود و بچه های خود را شیر میداد پوست آن بسیار سخت و از آن سپرهای جنگی میساختند ماهی عجیبی دیگری دیدم که شکل رنگ شطور را داشت و در شگفتی فرو رفتم که خداوند در, در دریاها و چه است اقی بعد از سفر بسیار طولانی به بندر بسته شدم و از آنجا به شهر بغداد مراجعت کردم و خدا را بسیر شوق گذارم که همه خطرات را پشت سر گذاشتم و با ثروت سرشار و نزد خانواده ام بازگستم از این همه سروت خدا داده مقدار بسیاری به, به توحیدستان دادم و قصد با دیگری خریداری کردم که در حال حاضر در آن سکونت دارم بعد از پایان شرح سفر سوم، سندباد مانند دفعات پیش سد سکهٔ طلا به هندباد پرداخت و از دعوت کرد که شب بعد هم به قصر بیاید تا ماجرای شنیدنی چهارمین سفر دریایی خود را برای او بیان کند هندباد و سایر میهمانان قصر سندباد را ترک کردند و شب بعد به قصر او آمدند بعد از صرف شام و خوردن غذاهای گوناگون و سندباد ماجرای چهارمین سفر دریایی خود را چنین شهر داد چهارمین سفر دریایی سندباد بحری هنوز خطرات و, لذت ها و دیدنی های سفر دریایی سوم نتوانسته بود انتظارات حادثه جویانه مرا جوابگو باشد و به خاطر جاذبه‌های بیشتر سفر و دیدنی های جهان پهناور تصمیم به سفر دیگری گرفتم برای این منظور سر و صورتی به امور زندگی داده و کالاها و اجناسی که می‌دانستم مورد نیاز و علاقه ساکنین شهرهای است که به آنجاها سفر خواهم کرد، به حد فراوان تهیه کردم و به مقصد ایران، سواری کشتی شدم، عازم سفر شدم ناخدا کشتی، بادبانها را کشید و کشتی به حرکت درآمد بعد از عبور از چندین بندر و چندین جزیره، در میان دریا باد شدیری وزیدن گرفت و نیروی باد به حدی زیاد بود که ناخدا مجبور شد بادبانها را پایین آورد و کلیه اقامات ایمنی را به کار گیرد، پس از خطری که همه ما را تهدید میکردههایی یابد تلاش های او به جایی نرسید و نیروی مقاومت ناپذیر طوفان قبل از آنکه ناخدا موفق به پایین آوردن بادبانها شود آنها را درید کشتی با فشار طوفان به گوشه ایران ب شده به گل نشد و بسیاری از سرنشینانی کشتی که اکثراً بازرگان بودند و گروهی هم از کارکنان کشتی به دریا سرنگون و در میان امواج متلاطم و سنگین به قعر دریا رفتند من و چند تن از تجار و کارکنانی کشتی که شانس به ما روی آورده بود، تخت پارهی به دست آوردیم و خود را به آن آویزان کردیم و جریان موج هم ما را به جزیره‌ای که روبروی ما قرار داشت پرتاب کرد و از خطر غرق شدن رهایی یافتیم. در این جزیری ناشناس، چشمه های آب گوبارا و درختان پرمی فراوان بود و توانستیم با استفاده از آن زنده بمانیم. تمام مدت شب را در همان ای که موجهای کوبنده ما را پرتاب کرده بود، به سر بردیم و آنچنان ترس بر ما غلبه کرده بود که قادر نبودیم درباره سرنوشت خود تدبیر اندیشی کنیم. صبح روز بعد که آفتاب سراسر سر جزیره را روشن ساخته بود، از ساحل دریا به راه افتادیم و به قلب جزیره پیش رفتیم. بعد از مدت راهپیمایی، چندین خانه نظر ما را به خود جلب کرد و بیدرنگ وارد آن خانه‌ها شدیم. و به مسیر ورود ناگهان هم پی بردیم که گروه بسیاری از مردان زیافوز ما را محاصره کردند. آنها ما را دستگیر کردند و بین خودشان تقسیم کردند و هر گروه چند تنی از ما وقت برگشته را به همراه خود به محلهایی که زندگی می کردند بردند. من و پنج تن از دوستانم را به محلی بردند و به مسیر ورود دستور دادند روی زمین بنشینیم و متریکیاهای قابل خوردن جلوی ما گذاشتند با اشاره به مفهوم